مهمان ها که رفتند، اسلام و مشتیه در فانوس به دست پله ها رفتند بالا و رسیدند به دربچهی که وسط کار گذاشته بودند. دربچه را باز کردند و رفتند بالا. پشت پنجره ها تاریک تاریک بود. مشتیه ایدر دربچه پای دیوار را باز کرد. اسلام سازش را گذاشت پای دیوار و پیت را داد، دست مشتی در که از درپچه خود را بیرون میکشید و بعد هم خودش رفت تو. مشجیدر فانوس را گذاشت روی رف کنار خم، بعد رفت بالا و در خم را برداشت و با کاسهایی که بسته بودند کمر خم شروع کرد به پر کردن پیت خالی. اسلام گفت مشجیدر نمیخواد پرش بکنی. دیگه کسی نمیخوره. مشجیدر گفت چطور کسی نمیخوره؟ من که میخورم تو هم که میخوری شهاتقی هم که میخوره اسلام گفت شهاتقی رو بردن خونه همسایه حالا گرفته خابیده مشریدر گفت تو چی تو که نخوابیدی اسلام گفت من و تو هم اینجا میخوریم و میریم پایین مشریدر گفت هم اینجا میخوریم و هم میبریم پایین میخوریم و کاسه رو پر کرد و از بالای نردبان داد به اسلام اسلام نشست روی زمین مشتیه ایدر گفت کاسه را بده به من اسلام گفت صبر کن من یه دفعه نمیتونم بخورم اینجا خیلی دنج و راحته مشتیه در گفت از بس نهره کشیدی سر خودت هم بردی اسلام گفت شهاتقی خودش گفته بود حالا میخورم درست میشه و کاسه را سر کشید و دوباره داد دست مشتیه ایدر و گفت بخور بخور بریم پایین مشتیه ایدر گفت من اینجا موندنی هستم هیچ وقت پایین برو نیستم اسلام گفت من که میرم مشریدر گفت آره تو خیلی دلت میخواد بین زنها و فلکی نه؟ خوبه حالای کاسم به یاد این بالا بزن میدونی این بالا خیلی میچسبه؟ اسلام گفت میوفتی اون تو خفه میشی مشریدر خندید و گفت چه بهتر اسلام چیزی نگفت و پله ها رو آمد پایین خانه خالی شده بود و خدیها این برانور ولو بودند مادر مسی شفی نشسته بود روی صندوق و آیش را جمع کرده بود توی شکم و خوابیده بود اسلام که سازش را زده بود زیر بغل از های چوبی جلوی پنجره رفت و حیات و نشست روی کند صدایی سازش که بلند شد اتاق ها و چراغ جلوی چشمانش رقصید صدای ساز اسلام که بلند شد مشر روغی از بهله چوبی جلو پنجره رفت پایین و به اسلام گفت استسلام؟ اسلام گفت چیه؟ مشری روغیه گفت آره عقبت می گشتم. اسلام گفت عقب من؟ مشر وغیه گفت آره همه جا رو گشتم اسلام گفت من که اینجا مشر روغیه گفت آره میگم حالا بریم اسب منو ببین اسلام گفت حالا که شب و هوا تاریکه نمیشه چیزی دید. مشروغی گفت چراغ میبریم. حالا کی نیست؟ فردا دوباره شلوغ میشه و تو هم یادت میره. اسلام چیزی نگفت و برند شد. سازش را گذاشت کنار کنده‌ی ایزوم. مشروغی رفت و فانوس را از توی مطبخ آورد بیرون. از های نردبان رفتند و رسیدند به پشت بام. اسلام گفت چرا آمدیم اینجا؟ مگه نمیریم خانه تو؟ مشروغی گفت نه از اینجا بیا تو کارید نباشه از بام طویله ها رد شدند و رسیدند به بام خانه اموز اینار مشترقه فتیله فانوس را کشید پایین و بعد پرید تو یک چار دیواری اسلام هم پرید مشترقه فانوس را گذاشت کنار دیوار و دربچه پای دیوار را باز کرد و روشنایی قرمزی آمد بیرون. اسلام سرش را برد تو طویله بزرگی بود با فانوسی که به تیر آویزان کرده بودند. سه تا گاف سرشان توی کاهتان بود و یک گونی خالی را مثل لاشه زده بودند به تیر وسط طویله. اسبلاغری بی حرکت ایستاده بود وسط طویله سرش را آویزان کرده بود پایین. هم سرش را از همون درب چه برد تو؟ اسب را صدا زد که آمد و ایستاد جلو آن دوتا. اسلام گوشهای اسب را گرفت و سرش را کشید بیرون چشمای اسب بسته بود و از دهان نیمه بازش خونابه قلیزی میریخت بیرون مشتی گفت: گفت میبینیش؟ اسلام با دست عشقهای اسب را پاک کرد و گفت حالا یه مشت خاک بردار بیار مشتی پاشود پاشد و رفت از گوشه دیگر بام یک مشت خاک برداشت و آور ریخ جلو اسلام اسلام چادر مشروغی را گرفت و پیچید دور دست چپش و دهان اسب را باز کرد و مشتش را چپاند لای دو تا فک حیوان فانوس را برد بالا گلوی تاریک اسب روشن شد اسلام با دست راست خاکها را برداشت و پاشید به دهان اسب اسب چشمانش را بست و دهانش را همان طور باز نگه داشت اسلام مشت دیگری خاک باشید به حفره تاریک گلوی اسب و مشتش را کشید بیرون اسب عقب عقب رفت و صرفه کرد گاوها سرشان را از توی کاهتان بیرون آوردند و اسب را نگاه کردند مشتی روغیه گفت چطور شد اسلام گفت دیگه خوب شد چند تا زالو چسبیده بودند به حلقش که کارشان ساخته شد حالا دیگه خون توف نمی‌کنه مشیرغه درب چرا بست اسلام چادر مشتیر روغیی را از مشت چپش باز کرد و انداخت کف چهار دیواری بلند که شد تا سایه خود را از بالای دیوار عقب کشیدند و قاه قاه خندیدند مشتی روغیی ترسید و حراسان گفت کی بود؟ اسلام گفت پسر مشتی سفر و سیدابادی ها. اسلام خم شد و سرش را از سوراخ پشت بام برد تو و آهسته گفت مشتی در؟ کسی جواب نداد اسلام دوباره گفت مشتی در؟ نور فانوس بدنه خم و پله های نردبان را روشن کرده بود اسلام گفت مشتی در چرا جواب نمیدی؟ نکنه رفتی پایین؟ صدای مشتی در شنیده شد که گفت چی میخوای؟ و بعد خزید وسط پله ها. فانوس صورتش را رو روشن کرد اسلام گفت منو میبینی در گفت نمیخوای بیای تو اسلام گفت یه چیزی میخوام به تو بگم مشتی یدر گف چی میخوای به من بگی اسلام گفت من دیگه فردا میرم فردا آفتاب نزده راه میوفتم مشتی یدر گفت چی شده کسی چیزی گفته کسی اذیتت کرده نکنه خسته شدی اسلام گفت من دیگه رفتنی شدم. در گفت، حالا سب کن ببینم چی میشه. اسلام گفت، یه کاسه پر کن و بده بالا. مشریدر کاسه ای را پر کرد و آرام آرام پلده های نردبان را آمد بالا. یک پایش را گذاشت به دهانه خم و دست چپش را بند کرد به لبه سوراخ و کاسه را از دهانه تنگ سوراخ داد به بالا. تنگ ظهر بود که اسلام رسید کنار استخر. ده خلوت بود و چند تکه ابر روی استخر سایه انداخته بود. اسلام از گاری آمد پایین. سازش را گذاشت روی گاری و نشست روی سنگ سیاه مردشوری. خواهر عباس که کنار چشمه بود رفت و اسماییل را خبر کرد. اسماییل با بوز سیاه آمد بیرون و رفت پیش اسلام. مشتی سفر سرش را از سوراخ پشت بام آورد بالا و بیرون را نگاه کرد و اسلام را دید که روی سنگ سیاه مردشوری نشسته و سرش را وسط دو دست گرفته است. اسمایل با صدای بلند گفت های مشت اسلام اسلام برگشت و نگاه کرد. بوز سیاه بوته کوچکی را که از زیر سنگ مردشوری بیرون آمده بود کند و بلید. اسمایل گفت زود برگشتی مشت اسلام اسلام گفت تو بیل چه خبر؟ اسماعیل گفت خبری نیست؟ اسلام گفت کت خدا چطوره؟ اسماعیل گفت همونطور که دیروز دیدیش؟ اسلام گفت بشین و چپاقت رو در بیار اسماعیل نشست کیسه توتون و چپاقش رو در آورد اسلام گفت این سنگارو کی ریخته پشت خانه من؟ اسماعیل گفت من نمیدونم. اسلام گفت کاری نامردی باید باشه. اسماعیل گفت کدام نامرد؟ اسلام گفت من میشنسمش. اسلام چیزی نگفت. خانه ها و بام های بیل را نگاه کرد و کلیه مشتی سفر مثل کدوی در پشت بام پیدا بود. اسماعیل گفت کجا را نگاه میکنی؟ اسلام جواب نداد و دستش را دراز کرد و چپغ را از دست اسماعیل گرفت. اسلام که از خواب بلند شد، آفتاب از سوراخ کوچک پستو پهن شده بود توی اتاق. سیاه رفته بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد. اسلام بلند شد و نشست. تمام شب را با لباس و کلاه خوابیده بود. هم همه زنها از کنار استخر می‌آمد. بلند شد و رفت از سوراخ پستو خلوتی پشت خانه را نگاه کرد و اسبش را که به تنه خوشگیده درختی بسته بود. اسب توی سایه بود و سرش را آورده بود پایین. خونابه قلیزی از دهنش بیرون میریخت. اسلام با خود گفت نکنه برای سرش اومده. تو سیدابات که آب نخورده. کاسه لابی را برداشت و رفت توی اتاق. پنجره را باز کرد آمد بیرون. زنها، دورا دور استخر مشغول ظرفشویی و لباسشویی بودند. اسلام را که دیدند، صداشان برید و بلند شدند دویدند توی کوچه ها. اسلام بهت زده زنها را نگاه کرد و بعد آمد کنار استخر و خم شد و خود را توی آب نگاه کرد و بعد کاسه را پر کرد و رفت پشت خانه. در سنگی را غلطاند و رفت توی خلوتی. اسب برگشت او را نگاه کرد. اسلام کاسه را گرفت جلوی دهان اسب اسب آب نخورد اسلام آب را پاشید زمین و کاسه را انداخت کنار دیوار سر اسب را بالا گرفت و چشمهایش را نگاه کرد سایه مردی توی خلوتی پهن شد و صدای آهسته مرد دیگری از پشت بام همسایه گفت چیکار میکنه؟ صدای دیگر جواب داد ایستاده کنار اسب و سومی گفت حتما تو این فکره که گاری رو ورداره راه بیافته بره اداباد دومی خندید و گفت پس مشجه راست میگه اسلام سرش را بلند کرد چند جفت چشم از سوراخ نافدان همسایه او را نگاه میکرد اسلام پشت پنجره توی تاریکی نشسته بود هاشیه ای از محتاب افتاده بود توی پستو. صدای پاپاخ از بیرون بیل شنیده میشد. چند نفر کنار استخر قدم میزدند. اسلام خم شد و نگاه کرد. مشکی بابا و اسماعیل و پسر مشی سفر را دید که گوش به گوش هم راه می روند و زیر لبی حرف می زنند و می خندند. فردا صبح مشکی بابا آمد سراغ اسلام که رفته بود و می خواست گاری را سوار بکند. مشتی بابا گفت مش اسلام میخواستم چیزی بهت بگم اسلام گفت چی میخوای بهم بگی؟ مشتی بابا گفت میدونی تو بیل ها افتاده؟ اسلام گفت هوه چی افتاده؟ مشتی بابا گفت که تو میخواستی تو سیدابات زن بگیری اسلام گفت من نمیخواستم زن بگیرم تازه اگه این کار میکردم گناه بود؟ مشتی بابا گفت میگن تو مشیروغیه رو دیدن که پشت یکی از بام ها خوابیده بود این بغل هم. اسلام گفت کی میگفت؟ مشتی بابا گفت دیشب تو میدان پشت خانه مشی سفر جمع شده بودن و پسر مشی سفر اومده بود و رفته بود بالای ایزومها و میگفت که چه جوری با سیدابادیا اومده و پشت بام طویله پیدا کرده که با مشیروغیه بغل هم بودی. اسلام گفت بیلی‌ها چی میگفتن؟ مشتی بابا گفت اونا باورشون شده بود اسلام گفت تو چی؟ مشتی بابا گفت من؟ من که باور نکردم اسلام گفت چی گفتی؟ چه کارشون کردی؟ مشتی بابا گفت گفتم که این هیچ وقت به مشتی اسلام نمیچسبه اسلام گفت دیگه مشتی بابا گفت و بهشون گفتم هر کی پشت سر مشتی اسلام حرف بزنه محکم میزنم تو دهنش اسلام خندید و چیزی نگفت و دوباره رفت سر وقت گاری طرف های غروب مشدی اسلام از صحرا آمد گاری انباشته بود از یونجه و اسلام نشسته بود بالای یونجهها کنار باغ اربابی که رسید آمد پایین و یونجهها را خالی کرد هوا آرام آرام تاریک می شد که کارش تمام شد اسلام دوروبرش را نگاه کرد. ماه باد کرده و خاکستری از لای شاخه ها پیدا بود. اسلام که خواست سوار شود، مرد سوار سوارگاری کوچکی پیدا شد که با عجله آمد و ایستاد و اسلام را نگاه کرد و گفت نمیای بریم سیدآباد اسلام وحشت کرد و گفت نه من نمیرم. غریبه گفت پس نیری کجا؟ اسلام گفت میرم خانم غریبه گفت خانت نرومشت اسلام اسلام گفت پس کجا برم غریبه گفت بهتر از بیل بزنی و بری بیرون تو دیگه تو بیل نمیتونی سر بالا بکنی اسلام گفت تو از کجا میای؟ غریبه گفت من از اینجا رد میشدم تو بیل کاری نداشتم و شلاغش را بلند کرد و راه افتاد اسلام ایستاد و نگاهش کرد غریبه رفت و توی تاریکی ناپدید شد از دور دست صدای ای به فهمی نفهمی به گوش می رسید گاری را پشت باقر عربابی ول کرد و خودش آمد توی ده و رفت طرف میدان پشت خانه مشتی سفر مردها نشسته بودن دور هم و مشتی بابا رفته و نشسته بود روی ها و تند تند حرف میزد و, و یلیها گوش میدادند. پانوس کوچکی بالاسر مشتی بابا روشن بود اسلام خودش را کشید کنار دیوار و ایستاد مشتی بابا گفت بعدش با مشتی در می بالا و پایین که میان پای اسلام رو زمین بند نمی شده صدای پسر مشتی سفر از پشت حیزمها بلند شد که گفت مشری در نمیاد پایین اون بالا میمونه و اسلام تنهایی میاد پایین مشری بابا گفت آره تنها میاد پایین و همه جا رو میگردی که مشری رو رو پیدا بکنه و نمیتونه میره میشینه رو کونده و ساز میزنه که مشری روغیه میره سراغش دوتایی بلند میشن میرم پشت بام سهید آبادی هم پشت سرش و بالاخره وقتی پیداشون میکنن که پشت بام طویله بله دیگه چادر مشری رو افتاده بوده یه گوشه و بقیهش که معلومه سید آبادی فکر آبه روی رو میکنند و بی سر و صدا اسلام رو برمیگردونند دو ساعت بعد اسلام پیداش میشه که میاد و از نردبان آویزان میشه و از اون بالا میخوره زمین اسلام برگشت و آمد توی کوچه صدای مشتی بابا از دور شنیده میشد که بلند بلند میگفت تا صبح میمونه رو زمین و بعد که میرن سراغش میبینن که بالا آورده و نردبان افتاده روز سینه به خیالشون که اسلام با قدمهای بلند دور شد و دیگر چیزی نشنید. صبح آفتاب نزده اسلام سازش را برداشت و با بز سیاهش آمد بیرون. ساز را گذاشت کنار سنگ سیاه مردشوری و رفت طرف خانه کت خدا. از روی دیوار پرید توی حیات بیل و کلنگ را برداشت و آمد بیرون رفت و زمین جلوی خانش را کند خاک که شد آب آورد و گل درست کرد و رفت پنجره را باز کرد و داخل اتاق را نگاه کرد کفش‌هایش را کند و انداخت وسط اتاق روی چرخ و تکاهای گاری که شب گذشته باز کرد و چیده بود روی هم اتاق تاریک بود دربچه پستو و های پشت بام را اول شب گرفته بود خوب که اتاقش را تماشا کرد پنجره را بست و شروع کرد به گل گرفتن آفتاب که زد و یلی آمدند بیرون و جمع شدن دور استخر و اسلام را تماشا کردند که لباس ازاداری پوشیده و ریزان کار می کرد بابا تا اسلام را دید برگشت و سراغ اسماعیل را گرفت و گفت بدو پیش کت خدا با بهش بگو که خودشو فوری برسونه دم خانه اسلام اسمایل گفت کت خدا که مریضه مشتی بابا گفت باشه مشتی اسلام میخواد از ویل بره اسمایل گفت راستی میخواد بره برگشت و دوی طرف خانه کت خدا مشتی بابا با صدای بلند گفت های مشت اسلام اسلام برگشت و نگاه کرد و چیزی نگفت مشتی بابا دوباره صدایش کرد های های مشت اسلام آهای بابا علی که سرش را از دربچه چهار دیواری آورده بود بیرون گفت چه کار میکنی مشت اسلام؟ فاطمه به زنها گفت مشت اسلام خانه و گل میگیره مشتی بابا گفت های مشت اسلام چرا خانه گل میگیری؟ اسلام گفت دلم میخواد که خانم و گل بگیرم مشتی بابا گفت مگه طوری شده؟ اسلام گفت هیچ طوری نشده مشکی بابا گفت چرا این کار میکنی؟ میخوای جایی بری؟ اسلام گفت خانه مال خودمه هر کار دلم بخواد میکنم و هر جا دلم بخواد میرم مشکی بابا گفت مگه طوری شده؟ کسی چیزی گفته؟ اسلام جواب نداد کارش رو تمام کرد و آمد پایین تمام ها و دربچه ها را گل گرفته بود خانه مانند گنبدی شده بود که از روی زمین صاف رویده و بالا آمده بود رفت اسب را از خلوتی پشت خانه آورد و ول کرد کنار استخر بوز سیاه که ایستاده بود و جماعت را نگاه میکرد، رفت طرف اسب. اسلام هم رفت کنار سنگ سیاه مردشوری و سازش را برداشت و آویزان کرد به شانه کتخدا با چوبهای زیر بقل پیدا شد صورت کتخدا باد کرده بود و پاهای آبا وردش را به زحمت روی زمین می‌کشید. اسلام گفت کت کتخدا می اومدم ببینمت تو چرا آمدی بیرون کت خدا وحشت زده گفت جای میخوای بریمش اسلام اسلام گفت من دیگه باید برم تو بیال نمیتونم بمونم کتخدا گفت تو نباید بری مشت اسلام چیزی از عمر من باقی نمونده امروز فردا رفتنیم مگه نمیخوای منو کفن و دفن بکنی اسلام گفت من که درم نمیخواد برم اما طوری شده که باید برم کت خدا گفت چه خبر شده کسی کاری کرده اگه کرده کی کرده و یلی یعنی که دورا دور کت خدا و اسلام ایستاده بودند جواب ندادند کت خدا گفت مشت اسلام اگه بری دیگه تو بیال کسی پیدا نمیشه که کاری از دستش بر بیاد آخه چرا میخوایی بری؟ اسلام گفت از اینا بپرس من که رفتم همه را از مشتی بابا بپرس بیالی ها یک صدا گفتن نرو مشت اسلام نرو اسلام گفت نرم بمونم که هر روز غیافه شماها رو ببینم حرفاتونو رو مگه دیروز یادتون رفته؟ کتخدا گریه کرد و گفت آخه چی شده؟ چرا چیزی به من نمی اسلام رفت و کتخدا را بغل کرد و پیشانیش را بوسید و برگشت بیان که چیزی بگوید رفت طرف جماعت جماعت کنار رفتند اسلام راه افتاد طرف جاده جماعت نگاهش کردند خدا نشست روی خاکها و با صدای گرفته ای گفت چکارش کردین چکارش کردین چه بلایی سرش آوردی و های های گریه کرد مشتی بابا گفت من نمیدونم من هیچ چی نمیدونم پاپاخ و بز سیاه اسلام از میدان پشت خانی مشتی سفر پیدا شدند و آمدند و از بین جماعت رد شدند و چند قدم دنبال اسلام رفتند و بعد ایستادن به تماشای اسلام و اسب با سر آویزان رفت کنار بید با چشمان نیم بسته زمین را نگاه کرد زبان خشک و بزرگش را بیرون آورد و شروع کرد به لیست زدن سنگ سیاه مرتشوری از گوشه لب‌هایش تکه های دلم شده خون بیرون میریخت سه روز بعد طرف های غروب که هوا ابری و تیره بود اسلام کاسه بزرگ سازش را زیر بقل گرفته بود و پای پیاده در پیاده شهر میگشت ساز میزد و آواز میخواند. جماعت که از روبرو می آمدند کنار میرفتند می استادند و دهاتی پیر را با پیراهن سیاه و ساز عجیبش تماشا میکردند. آوازش را میشنیدند میخندیدند و به طرفش پول میانداختند اسلام از یک خیابان به خیابان دیگر میپیچید و دی را به دنبال خود میکشید. مشی اسلام ساز میزد و جای می خندیدند و بزرگترها با حیرت نگاهش میکردند. از دور صدای ساز تنهایی میآد. و صدای خنده جماعتی که آرام آرام نزدیک می شدند. پشت نرده های مریض, مریض ها جمع شده بودند و سرک می کشیدند تا ساز زن را ببینند آواز آشنا نزدیک تر می شد و کاچهای بلند مریضخانه می حرکت ایستاده بودند سه روز بعد طرفهای غروب که هوا ابری بود و تیره بود و نمناک بود مشتی رقی و مشتی ایدر و دو جوان سیدابادی با دو تا اسب آمدند توی بیل. مشتی بابا که سرش را از سوراخ بالای در آورده بود بیرون آنها را دید که آمدند و کنار استخر ایستادند هیچ کس توی آبادی پیدا نبود بوز سیاه اسلام نشسته بود جلوی پنجره گل گرفته و چرت میزد. مشتی بابا با صدای بلند گفت های های سید آبادی ها دنبال کی می گردین ها برگشتند و نگاهش کردند و مشتی بابا را ندیدند مشتی بابا کلاهش را گذاشت سرش و آمد بیرون چند زن و مرد بیلی هم آمدند بیرون و دور تازه واردها جمع شدند از رفتند کنار استخر و سرهاشان را آویزان کردند توی استخر پسر مشتی سفر پیدا شد و جوانها صدایش کردند پسر مشتی سفر گفت آمدین چه کار؟ سید آبادی اول گفت آمدیم سراغ مشت اسلام پسر مشتی سفر به مشتی رقعیه اشاره کرد و چشمک زد و آهسته گفت این کارش داره؟ مشتی رقعیه برگشت و عصبانی نگاهش کرد و گفت آره من کارش دارم به تو ربطی داره؟ مشتی بابا که فهمید سراغ کی آمدند گفت اسلام رفته شهر مشییدر گفت رفته شهر کی برمیگرده مشتی بابا گفت معلوم نیست که کی برمیگرده شاید هم بر نگرده خدا میدونه مشتی رقیه گفت نگفته کی برمیگرده مشتی بابا گفت من نمیدونم هیچ کی هم نمیدونه اونهاش اونم خانه‌ش که گل گرفته و رفته مشتی روغیه به مشتی در گفت چه کار بکنیم؟ هر دو برگشتند خانه اسلام و بوز سیاه اسلام را نگاه کردند مشتی بابا گفت طوری شده؟ مشتی در جواب نداد مشتی روغیه گفت چه کار بکنیم؟ مشتی بابا به جوانها گفت خبری شده؟ جوانها؟ شانه ها را بالا انداختند و چیزی نگفتند مشتی رو رفت کنار عصف و دستش را گذاشت پشت یکی از عصف و با صدای بلند گفت نمیدونم چه کارشان بکنم برگشت و دوباره خانه اسلام را نگاه کرد مشتی بابا و پسر مشتی سفر رفتند و عصف را نگاه کردند که پاهاشان را باز گذاشته سرهاشان را آویزان کرده بودند توی استخر دهان هر دوتاشان نیمه باز بود و دلمه های ارقوانی رنگ خون از حلقومشان می جوشید و کف میکرد و بیرون می, می آمد و تکه تکه می توی استخر رو جان می گرفت مثل غورباقه ریز و درشتی که از فازلاب به تنگ و تاریکی نجات یافته به استخر پر لجنی رسیده باشد